همه شهر تهران مرا را خان آدم را می اما من میان آنها خود را قریب و بی کس احساس می کردم با آنها نمی توانستم بشوم. بشوم. آنها زبان من را بلد نبودند و احساسات و افکار آنها برای من بیزاری میآورد. آورد هیچگونه رابطه میان من و مردم نبود و کسانی که آن روز مردم نامیده میشدند، یعنی آنهایی که حرفشان دو رو داشت اینها در اثر انتشارات پدرم که دختر باهنری در اروپا دارد تصوراتی از من داشتند که برای من تهواور بود و این پدر بیچارهی که آنقدر مرا دوست داشت در نظر من از هر بیگانی بیگانه ای بیگانه بود شب که می توانستم دو سه ساعت با او بن و صحبت کنم تمام وقتش صرف آماده کردن سینی مشروب و آره خوری می شد. مدت سر کبابسیخی و یا دنبلانی که خوب سرخ نشده بود و آبدار بود جدال می و وقتی چند گیلاس سر می دیگر مس بود و جز شوخی و بازی و صدای مادرم را درآوردن آوردن کاری دیگر ازش ساخته نبود. به علاوه همش می خواست در باره که داره خانه ما را از پاشنه برداشته بودند گفتگو کند. مادرم اصلا یادش رفته بود که من پنج سال تمام در پاریس آزاد بودم و باز هم خیال می کرد که من دختر 17 ساله چشم گوش ای هستم و موی دماغ من می شد که فلان ساعت کجا رفتم و را دیدم و فلان مردی که فلان روز به دیدن من آمده بود و کارت گذاشته بود کیست و فلان نامه از کجا رسید و فلان شب کجا دعوت دارم. و من نمیخواستم این دو نفر مهربان را که آنقدر به من علاقه داشتند از خود برنجاندم این را هم در نظر بگیرید که من با چه شوری منتظر این نخستین ملاقات بودم من از این چیزی را که در زندگی داشتم صنعت خودم را ترک کردم و به کلی پشت سر انداختم برای اینکه با کنایه و اشاره به من تلقین کرده بود که من حلقه بسیار مهم و محکمی در نهضت جدیدی که در تهران به زیان استبداد داشت ریشه می گرفت می توانستم بشوم و در من این فکر پربرش یافته بود که شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد در موقع مخصوصی در فرصتهای غیر عادی ممکن است منچه اثر بسیار عظیم می گردد چه بسا ممکن است که سرنوشت مملکتی در یک آن بخصوص بسته به فداکاری یک فرد عادی حتی فداکاری هم نه بسته به جسارت و دلیلی موجود نحیفی باشد که منزله پیچ ریزیز که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشغال کرده باشد من خود را یک چنین وسیله می دانستم و عواقب پرارزشی، از این گذشتگی که در زندگی کرده بودم انتظار داشتم. به خود می گفتم بلاخره جنبشی ضبط استبداد در ایران دارد جان می گیرد و مرکز این نهزت آنطوری که خدا داد به من فهمانده بود در اروپاست و من رابط تشکیلات ایران خواهم بود. و آن کسی که در ایران دارد نهزت را اداره می کند ماکان است. و بالاخره من آن پیچ کوچکی هستم که در دستگاه بزرگی جای ناچیزی را اشغال کرده است من باید از را به او ابلاغ کنم و زمانی نخواهد گذشت که من همه کار این احسط مقاومت خواهم بود و آن وقت حتی ماکان هم باید تحت نفوذ و اراده من باشد اوه چه خوابهای مخوف و شیرینی محتفظ می شوید؟ من علاقه به سرنوشت مردم این مملکت نداشتم دردهای آنها دل من را نمی سوزند در زجر و مصیبت آنها شریک نبودم هر اتفاقی میافتاد جای من ام بود چه ارتباطی ما بین من و این کور و کشلها که این مملکت را پر کرده بودند وجود داشت تازه رجالش چه بودند چرا به فکر آنها باشم اگر رو به خطر میرفتم باز هم در فکر خودم بودم اینها به جای خود صحیح است اما باز هم نكتهای هست که باید بگویم شاید شما قبول کنید ولی او هرگز قبول نکرد اگر قبول کرده بود چنین تصویری از من نمیساخت. آقای نازم میخواهید باور کنید میخواهید نکنید من میخواهم تمام سوراخ سنباهی روح زرکشیده خودم را به شما نشان دهم استاد شما تصور کرد که من به قصد انتقام از توهینی که پنج سال پیش یعنی قبل از رفتن به فرنگستان به من وارد کرده بود با او مواجه شدم در صورتی که من آن ایام یعنی از روز اول خرداد که به ایران برگشتم تا روز دهم خرداد که با او روبرو شدم دیگر اصلا و ابدا در فکر آن ملاقات نبودم. عالم دیگری بر روی من گشوده شده بود. جاه‌طلبی مرا برای بودند. من میخواستم در فعالیت اجتماعی که البته برای من در حسته آن قرض شخصی نهفته بود با خوشبختی روبرو شوم. آن کینهای که از این مرد در دل گرفته بودم فراموش شده بود از همون روز ورود به ایران به تحقیق در زندگی او پرداختم تا اینکه فهمیدم هر روز ب... به همین مدرسهای که شما الان نازمان هستید میرود و ازها ساعت پنج و شش از آن خارج میشود روز پنجم خورداد بالاخر از روی نشانی که از او گرفته بودم و به کمک حافظم او را شناختم و مدتی پهلو به پهلو او در خیابان قدم زدم و میخواستم با چشمهای هنرمند که هنوز در من نمرده بود او را ورانداز کنم و خواس سیمایش را به ذهن بسپارم آن روز به چشم زن زنی که طالب و تشنه است به اون نگاه نمی کردم. اما نمیدانم چرا دلم میتپید میخواستم این مرد دلیل را که جان به کف و مبارزه میکرد و ته دلش به تمام دستگاه پر سرق و ورق استبداد میخندید بشناسم و طوری در نخستین ملاقات روز دهم خورداد با او برخود کنم که مورد احترامش باشم. با چنین شور و با چنین هیجان، و با چنین توقعات و با چنین امیدی چند دقیقه پس از ساعت هفت روز دهم خرداد سال هزار با اون مواجه شدم اما حالا باید به شما بگویم که یک نگاه صورت او، مبادله چند کلمه تمام این حالات مرا دگرگون کرد و من بازمانند سابق زنی شدم که احساس کرد با مردی از خود بزرگتر از خود استخاندار تن روبرو شده است میدانید اگر استاد همانند مردان دیگر به من دل میباخ شاید برق حوثی ما را به هم متصل می کرد و به همان تندی خاموش می شد و خاطر استاد همانند مانند خاطرات دیگران در فراموش خانه دلم پنهان می شد. احساس محو و گذستهی درون مرا من را منقلب کرد و به نظرم آمد با مردی روبرو هستم که احتیاج به من دارد محتاج روح و تن من است. نه به مردی برخوردم که می و می خواستم خوشبختش کنم و در آغوشش آن خوشبختی که آرزو میکشیدم کشیدم